ایرانویج بازنگری در تاریخ قلم رو بمیانی. دانشمندان دوره استعمار که میرفتن توی این مملکت های استعمار شده بررسی هایی که انجام میدادن برای ما امروز خیلی نمیتونه سندیات داشته باشه چون انگیزه های سیاسی پشتش بوده ما مثلا شش تا حداقل واجدیم در مورد گردیدند خب این نمیشه به سادگی یاداشت گذاشت این پر از رازه واجای که در مورد قلاب ماهیگیری هست خیلی جالبه با جایی که در مورد حیوانات دریایی هست من خصوان که در آبای شیرین زندگی میکنن خواهی نشون میده که این منطقه که من زندگی میکنن چه خصوصیت و هوایی داشته یعنی میخوایم ما بحث کنیم که یک جایی به نام ایران که تو همین 100 سال انگلیسی خط و دورش کشیده منظورمون این نیست به نام یزدان با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید با قسمت چهارم برنامه ایران وچ در خدمت شما هستیم بحث دقایق پایانی قسمت سومین برنامه خانم دکتر رسونن به به اسطوره‌ها و یه سوال خیلی جالبی مطرح کردند که چرا ما به اسطوره‌ها توجه نمی‌کنیم در حالی که در کشورهای مختلف ها یکی از نمادهای بررسی تاریخ و فرهنگ ایران هست ولی متاسفانه در ایران بیشتر نماده، حالا جوکو، بیشتر حالات قهوه خانه حالا درست زمان قدیم قهوه بود ولی در اینال با تاریخ هم از اون برداشت میشد. ولی الان متاسفانه در این 100 سال اخیر خب این مسئله با اینکه حالا رنگ باخته سنت قهوه سنت شاهنام خانه. قطع شده و از بین. حتی مذهبی های ما شاهنامه خان بودن شاه اسمایید سفری خودش شاهنامه خان بود یک کودک دوازده سیزده سالی حافظ شاهنامه بود ولی با این حال در ایران امروز ما نگاه به اسطوره ها یک نگاه تقریبا لوس و مبتزل هستش و بیشتر حالات استفاده از شعرها و استفاده برای لوس کردن مسائل مختلف از به نگاه تاریخی به اون صورت نمی گیره در حالی که در بسیاری از کشورها و در بسیاری از تمدن ها این ها نمادی شده برای تحقیقات و پژوهش های تاریخی مثلا در مورد همین مسئله ای که در اکثر های دنیا هستش مثلا رویین تن بودن یک تنی مثلا رویین هستش و هیچ تیری و هیچ در واقع تیقی بر آن کارگر نمی افتد در اسطورهای ما اسفندیار رو داریم در واقع فقط تو چشمش فقط رو این شما تو اون چیزی که اسطوره ها گفته میشه موقعی که در آب حیات او در واقع غسل داده میشد چشمش بسته میشه و این آب حیات و اون آبی که در واقع تن او رو روئین رو میکنه به چشمش نمیرسه و از چشم آسیب میمونه در حال که مثلا ما میگیم او پاشنه آشیل او چشمش بود در حال که همین پاشه آشیل خودش یه استور هستش سنگ سیاه حجرالاسود شد سنگ سنگ اسمنی یعنی سیاه وقتی ما میگه پاشنه آشیل اسفندیار چشمشون یعنی چی مثلا یعنی از یه اسطوری دیگه برای فهمی اسطوری استفاده میکنیم مثلا آشیل هم یه پهلوانی بود که تو همر هست و ایلیاد همر هستش که او هم موقعی که کودک بوده ظاهرا مادرش او رو به آب حیات خواهد بده. در, در دنیای زیرین در دنیای بله زیرین در رودخانه بله. دقیقا بله فقط اون پاشنشو بهش آب نمیخورد و اون از پاشنش نقطه ضعفش پاشنش بوده که تو نبرد که تروا معروف هستش یک پهلوانی بانامو پاریس یک تیری به پاشنه او در واقع میندازه. حالا نوعی اینجا کاری نداریم ما. در مثلا... بعدن کار داریم ها دکتر. بله. یکی از نقاط عطف و های تاریخ قلم میانی. دقیقاً. دقیقا خیلی فکر نکن تا بله اون بله. بله. خیلی طول میکشه حالا چون از الان بله. بله. بله. بله. چند سال فاصله داره. بله. بله. بله. از که مثلا دو اسطوره های کشورهای اسکاندیناوی ما بالدر رو داریم اسطوره های مثلا کشورهای آلمان و اتریش و اینا ذفرید و داریم که ظاهرم موقعی که ایشون هم، داشتن غسل می‌کردن توی آب حیاث اون اجتهاد بود اون بوده بله تیره بره. پشتش نمی‌تونه بدیده چون یک زاهرات برگ تهلی می‌افته روی کتفش و از اونجا در واقع نقطه ضعفش میشه حالا کارن این مثال‌ها رو من درس دادن که ها در کشورهای مختلف های پژوهشی ما به هزارهای در واقع پژوهش‌های علمی هست و در کشورها جدی گرفته نمیشه چرا باگه ایران مهترمود چه دلیلی وجود داره که این اسطوره ها در کشور ما جدی گرفته نشد و اگه جدی گرفته بشه چه تأثیری میذاره در بازبینی و بازشناسی تاریخ ایران؟ خواهش میکنم درود بر شما و شنوندگان گرامی. گمان کنم تو نشست پیش خانم دکتر احسانی دلیلشو گفتن. بله. یعنی اون کسایی که در دوره 300 ساله استعمال اروپایی اومدن به کشورهای حالا شرقی و آفریقایی و, و قاره آمریکا به قول یکی از رئیس جمهورهای کنیا گفت اینا وقتی که اومدن کتاب زمین ها مال ما بود یک کتاب مقدس هم تو بغل اونا بود اما وقتی که رفتن کتاب مقدسه تو بغل ما بود اما زمین ها مال اونا شده بود یعنی کاملا هدفمند اومدن و این کار کردن اینی که اونا استروهاشونو بزرگ میکنن و به قول آی فیروزی میگن کافیه که یک اسکندر بگی اونا پنجا هزار خط برات قلم بزنن تا ما یک کلام میگم حرف بزنیم باستانگرام میشیم نجات پرس میشیم نمیدونم واپسگرام میشیم تاریخ زده میشیم گذشتگرام میشیم همه چی میشیم خدمتون بگم که اون مثال خوبی زدین ما کلن تو تاریخ قلم روی میانی چهار تا روینتن داریم نه. یکی اسفندیاره یکی اوس یا آشیل، یکی زکفرید جرمنیه یکی هم بالدر نروژی که این هر چارتهایشون روینتنن و یه نقطه ضعف هم دارن یعنی یک استور مشترک در قلم روی میانی. روینتن با یک نقطه ض نقطه ضعفه بالدر یک گیاهی که اگه اونو به نوک پیکان آغشته کنند بزنن تیر فرو میره وگرنه فرو نمیره. اون هم یه نقطه ضعف داره. خدمتون بگم که من یه کم تو این بس خواهم کلیهستانی ممسرف کرده و شما بازش کردن یکم کم بیشتر از بحثای دیگه دلم پره که ما چرا اینطور بیعتنائی میکنیم به این قضیه تو گمون کنم نشست دوم بود من این مثالی زدم تفکر چپ من نظر خودم رو میگم تفکر چپ من به سیاست کاری ندارم چپ فکری رو میگم تفکر چپ از دید من ویرانگر هویت ملی این چیزی که برای اثباتش خیلی هم نیاز نیست دست و پا بزن متأسفانه ما بودیم و هنوز هم گرفتار این بلیه هستیم. من یه مثال زدم، حالا نام نمیبرم، یک روزنامه اون یه ستون زده بود که آقا کلاغ قرمز این خوبیا رو داره، این رادارو داره، این دیوی که آورده، آهای تماس می‌ترسناکه، بچا ما می می‌ترسن. من بهتون گفتم هالیوود برنامه می‌سازه اجدها و نمی‌دونم 700 و 800 رو. گودزیلا و گودزیلا و نمی‌دونم همه جورو میاره، چقدام تعریف و تمجید و به به ببین فکر رو چه فکری پشت این بوده چجوری جوری قشنگی کو که می عروسگ آورده دیوی حالا ف... ببینین زمانی که دیو رستم رو میبره به آسمون میگه تو رو بندازم رو کوه یا تو دریا رستم چون میدونست دیو هر هرکار بهش بگن چپ انجام میده آقا منو بنداز تو کوه که بل که بندااز تو دریا زنده بمونه اینو کی میدونست به جز کسایی که آشنا با شاهنامه با این دیوی که های تماس میشون داد الان همه میدونن که دیو کارش چپس خب یا آموزش تاریخ خب، چه داره. داره تاریخ استورهیمونه تاریخ رواییمونه خب این تفکر چپ متاسفانه بر ما قالبه و بر اون جهان غرب به صاحب قلبه ماهار کردن ما گرفتار اینیم اومدن چیکا کردن؟ گفتن آقا تاریخ به انگلیسی میشه استوری خب استور و افسانه چی میشه؟ گفتن کاری نداره میشه میتولوژی میت یعنی دروغ آره، یت دروغ چیزی که نیست یه چیزی که همج رو هوا داریم در حرف میزد اما ما اگه بخوایم تاریخ خودمون رو نگاه کنیم ما یک دوران کنونی داریم همین حالا یه چیزی پشت سرمون داریم به نام تاریخ یه نقطه میانی داریم جایی که تاریخ با استوره مخلود میشه تقریبا مثل زایش کورش ما درباره کورش تاریخ داریم اما درباره زایشش یک استوره داریم نمیدونیم دقیقا چی شده جایی که تاریخ با استوره داره مخلود میشه یا در دوری گشتاس همینطوریه زرتوش زمان گشتاس بوده یه فرد حقیقی بوده میدونیم زمان گشتاس بوده بعد گشتاس رو برای ما گفتن نه نبوده اما زرتوش تو کاخذ گشتاس بوده با حالا شما جتیفه جا... رو نگاه کن خب اینجا جایی که تاریخ با استوره مخلود میشه بعد استوره داریم مثلا استوره داریم که کیخسرو اومد رفت کو سرما شد با گسته هم و اینا مردن این استوره است این باد بررسی بشه استوره افسانه نیست این فرق میکنه بعد میریم عقبتر حالا یه جایی داریم که استوره با افسانه مخلود میشه مثلا شما فرض کنیم که حدوداً مثلا زمان فریدون به زمان جمشید دیگه حالا گشتاس بوده اما شخص آدمی ظاهرا به نام فریدون یا جمشید اینا گویا دوره هایی بودن یک کارایشون استورهیه که میشه زمان بهش داد به صورت تاریخ ذکر کرد ازش یک بخشایش دیگه افثانهیه خب حالا افسانه هم باز معناش میت نیست افسانه مثل دوره تهمورس بله. مثل دوره سیامک بله. مثل دوره کیومرس بله. اینا افثانه من از افسانه میشه اون آغاز تاریخ رو پیدا کرد. پشت افسانه حالا یک اون بحث انسان شناسی پیش میاد که ما در برنامه برابری بحث کردیم آه. یه بحث بحث اسطوره‌ای رو بخوایم دنبال کنیم میشه جهان باورها پشت سر افسانه زروان باردار شد اهریمن از پهلوش در اومد و اینا حالا باز اون خودش هم معنا داره ها نبرد میان تاریکی و روشنی و اینا اون خودش خیلی معنای بلندی داره در زندگانی ما واقعا مشهوده من فقط خواستم اینو توضیح بدم که این توالی اینا این میت اصلا یک چیز ببخشید میتولوژی بخوایم معنی کنیم اینا را اصلا خیلی چیز بیخودی همون به درد خود غربی ها میخوره ما تصورمون از این واژه ها اینه خدمتون بگم اونا در یک مبنای خیلی روشنی اتفاقا کار میکنن من خوشم میاد از غربی ها ولی تعریفشون با خودشون روشنه ببینید ماکیاولی در کتاب هنر جنگ چی میگه این قرن میگه اگر بخواهی ملتی را به بردگی بکشی فرهنگ و هویت او را هم بشکن و اگر فرهنگ او خدش ناپذیر بود تا آنجا که میتوانی از دروغ بهره بگیر و آن را از پای درآور چون زمانی که ابزار راستی را در دست نداری دروغ بزرگترین اهرم برای پیروزی است. حالا فهمیدین چرا میان تو تاریخ ما دست میبرن تحقیق میکنن، بررسی میکنن، چپش میکن بله. مبناشون اونها بر ماکیاویلیز حاکمه بر کارای اوناست دیگه منافع انگلیس ها میگن ما نه دوست دایمی داریم نه دشمن دایمی ما منافع دایمی داریم منطقه ها سخته این کار رو ما الان کاری که شروع کردیم دکتر لسانی کاناداکی بودن برای من تعریف میکردن گفتن استادشون این معرفی کردم به یک استادی در دانشگاه شیکاگو آقای دکتر ادوین برایانت اگه کنه. ایشون که اونجا بحث مباحث هند رو مطرح کرده بود که در آمریکایی که کاملا نشر هر چیزی آزاده اما ایشون رو فشارش داده بودن که این بحث رو این سیاسی اینو نباید مطرح کن. اما به دکتر حسانی گفته بودن خیلی خوبه و من خوشحالم که میشنوم شما تو ایران چنین جلساتی داریم برگزار میکنیم و درباره این بحث میکنیم اون ها رو به هر جا رسید من رو هم مطلع کنین بله دکتر جانش درخشانی هم در مسابقه روزنامه شرق سال 83 کردن همین آرزو رو کرده بودن پیش از مرگ گفته بودن که من امیدوارم این مباحثه ها ادامه پیدا کنه تا ما بتونیم تاریخ واقعی ایران رو بیاریم تو کتاب‌های درسیم مون دکتر درخشانی اراده یعنی گیر کار رو پیدا کرده بودن یه جمله‌ای دارن ایشون میگن که اگر چه دانش امروز دیگر بر دیدگاه خاصگاه اروپایی ایرانیان ارج و بهاءی اما هنوز هم باستا به با آن در اندیشه ها ریشه ی جرف دارد. میدونین حتی کسای هم که به این سمت کشیده میشن باز اون نقطه ها و معلفه که میخوام بازگشت بدن باز ریشهش برمیگرده توی اندیشه که فرو کردن توی مغز ما متاسفانه. من درباره باره استوره چون صحبت کردم یک اون دیویرم گفتم حالا من چند تا مثال میزنم که ببینین یه مثال شاهنامه است دیگه. بله. یه مثال خیلی کوتاه بزنم در داستان رودابه که ما یک بارم فکر کنم تو برنامه برابری بهش اشاره کردم اون داستان اولا که یکی از زیباتر عاشقانی جهانه داستان رودابه فکر نکنم 5 درصد ایرانی‌ها بیشتر خبر داشته باشن از این با خوشحالی نمیگیم با گریه میگیم یه جایی هست که اونجا زال رودابه باردار میشه سخت زادنش و نیاز میشه که اینو غیرطبیعی رستم رو به دنیا, دنیا بیار بعد اینو واردش نمیشم سیمرغ میاد اشاراتی میکنه که تو برنامه برابری شنوندگان میتونن گوش کنن که دقیقا چه اشاره ای میکنه یک دستور پزشکی سال 2000 میده دیگه بله. رستم زاده میشه و بعد اینکه اون میدوزن جراحتشو زخمگاهش و اون دارو رو میمالن موقعی که سیمرغ میخواسته بره که ما گفتیم سیمرغ نماد پزشکی دیگه. دیگه سینا, سینا مرغ در نام سینا برد. در نام سینوه مشخصه سی میگه که بذال میگه موقع رفتن میگه که حالا دیگه من دارم میرم حالا تو به دو مال از آن پس یکی پر من خجسته بود سایه فرمان من. شما اگر برو دوانش تهران بگو اگه هار هار بهت نخندیدن اصلا یعنی چی؟ به دو مال پر من میگه همون داستان پر سی رو گفته به مال روش و همش خرافات آقا سی اگه بدونیم نماد پزشکیه دستورات دوران نقاهت رو داره میده میگه این دستورات من که نمادش پرعونه این کار رو بکن خجسته بود سایه فر من یعنی اون دانش من دانشیه که حتما اثر میکنه تو نگران نباش برو این کار رو انجام, انجام بده ما برای که بدونیم فقط اینها خیلی هم به دستمون خالی نیست ما باز هم توضیح دادیم حالا بعدن واردش میشیم اینجا نمیخوایم چیز کنیم یک اشاره‌ای کردیم به که شاهنامه ریشه هاش که حالا خانم احسان اینجا هن، من اصلا درست نیست صحبت کنم فقط من یک کوتاه فقط به شما بگم که این ایراده مال الان نیست قبلا هم به مثلا شاهنامه و اینا گرفته میشده شاهنامه ابو منصوری آه. که بعد فردوسی اونو به نظم در آورد در مقدمش ببینید چی نوشته همین بس که من کردم که آقا مثلا میگه او اینا که همش اصلا خیالیه این حرفا چیه در صورتی که اینا اسطوره است سازنده ای این فیلم تروی که تازگی همین اواخر ساختن و پخش کردن بله. حالا با روایت خودشون کار نداریم بعد هم ما بس میکنیم که ترو وا چیه به کارگردنش گفتن آقا تو رفتی این چیز کردی این جلوی این کاخت مجسم های سمتری گذاشتی ما رو رفتیم پیدا کردیم مجسمه‌ها 70 سال بیشتر نبوده اونجاشو کندیم بابا من اگ وزنم 70 سانتی می گذاشتم اولا کسی نمیدید مثلا فیلمم تروااله میشه تروااله که... نمیشه بله باید من با قلف کنم تو این اسطوره همینه تاریخ اگ بخواد ماندگار بشه زمان زیادش بگذره، از دست نره با تعبیر به اسطوره بشه بعد شناس میخواد یعنی واقعا باید با چشم دل نگاه کنید تا بفهمین چیه فقط من این چند خط تو از شاهنامه ابو مسعودی میخونم و اینجا خط میکنم که شما ببینید اون موقع اینا اشاره کردن در مقدمش که آقای جان اینا که میخونین تعجب نکنید میگه که و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگی نماید و این نیکوست میگه چیزهای عجیبی تو این میبینن چون مغز او بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید میگه تو معناشو باید بفهمی چون همان سنگ کجا آفریدون به پای باز داشت میگه الان اونجایی که او داستانه تو به ظاهرش توجه نکن و چون ماران که از دوش زحاک برآمدن میگه تو نگا نمی، حالا بگو آقا مگه میشه از دوش آدم نمیدونم مار در بیاد تو اونه رو نگاه نکن تو برو معنای اون رو معنای اون رو در بر. من فقط اینجا یه شعر چیز داره بعد من یک اشاره تو های بعدی اگه نوبت شد من به چیز میکنم به همین داستان کیومرث میکنم و اسطورهای ایجی من حساب نمو... ماویزا و نمونه‌شون میارم مولوی هم باز همین گرفتار همین بلا بودن شده بگه که آقا این سخن چون پوست و معنی مغزدان این سخن چون نقش و معنی همچون جان یعنی اگه بخوایم همچون ظاهری نگاه کنیم استورای ما بیمانی شما یه بار من گفتیم میشه به سوالان به کرد گفتم نه اینجوری بخوایم نگاه کنیم نه اگه بخوایم واقعا علمی درست با مبنا و با پای و بنیان بریم ریشه هاشو در بیاریم نگاه کنیم همینطور که میبینین هم تو مقدمه شاهنامه عبو منصوری گفته و هم مولوی اشاره کرده و بزرگان دیگه اگه معناشو بخوایم پیدا کنیم دیگه واقعا میشه دست راست ما بله. هر جایی باید رجوع کنیم به اینا اوز بخوام من اینجا یک مدار طولانی شد خانشگام بزنیم نکته از دست نره اوز شما با اینام اشارات فرمودید به تفسیر اسطوره که اسطوره نیاز به تفسیر داره خب اساسا متن هر متنی نیاز به تفسیر داره خصوصا متن تاریخی متون تاریخی تفسیر و در این حال تعویل که در زبان شناسی غربی از اون به عنوان هرمنوتیک یاد میشه که شما یه متنی رو باید با ابزارهایی مثل هرمنوتیک و پدیدارشناسی تفسیر کنید تعویل کنید و اون قباری که چون استوره یه تاریخ قبار گرفته است اون قبار رو باید بزودین و تاریخ رو از اون در بیارید خب اینها برای این نیاز به ابزارهای مختلفی هست نیاز به اسناد مختلفی هست که این ها در واقع قبار روبی بشه و تاریخ واقعی نمایان بشه و نیاز به یک حالا به قول آقایون علما نیاز به یک جهاد علمی داره ما مثلا در علم هرمنوتیک چندین نوع هرمنوتیک داریم حالا هرمنوتیک متن لزوما متن فقط یه ما فکر میکنیم که ما ایرانی فکر وقتی که ما متن می‌خوایم هرمنوتیک بکنیم یه متن نوشته است نه استوره، نماد پرچم زبان آین، فرهنگ حتی نوع رفتار نوع رفتار ملل مختلف در های تاریخی خودش یه متنه که میتونه تفسیر و تعویل بشه تفسیره مثل هرمنوتیکی بشه تفسیر هرمنوتیکی مثلا ما یه هرمنوتیک قول شلایر ماخر رمانتیستی داریم که شما وقتی میاین یه متن رو در قالب تاریخیش میریزید و از اون تاریخ واقعی رو میکشیم بیرون یه هرمنوتیک انتقادی داریم مثلا شما به اون متنی که نگاه متن انتقادی نگاه میکنید که thinking بهش نگاه میکنید و بعد واقعیت رو از داخل انتقاد میکشیم بیرون یا یه که هرموتیک پدیدارشناسانه دارید شما وقتی که این اسطوره رو یا این افسانه ها یا در واقع نشانه هایی که از تاریخ دارید این رو در واقع پدیداری از تاریخ واقعی بیرون که یه پدیدارشناس میخواد که اینها رو تفسیر و تعویل بکنه و تاریخ واقعی رو بکشه بیرون سرکار خانم دکتر احسانی خب این بحث عدم توجه و یا کم توجهی به اسطوره رو خب شما مطرح کردید ما خیلی مشتاقم چون تو برنامه گذاشت دو سه دقیقه بیشتر فرصت نشد صحبت بکنید در ملل دیگه در جوامع دیگه این استفاده از استورها چطور بوده که ما این ها در واقع استفاده نکردیم برای استخراج تاریخ واقعی خودمون و چه راهکارهایی وجود داره که ما بتونیم از این استورها استفاده کنیم برای تفسیر تاریخ خودمون و نگاشتن دوباره تاریخ واقعی خودمون یه چیزی بگم راجع به همین دیدگاه غربی امروز ما بله. نسبت به مطالعاتی که داریم در حالا زمینه که الان داریم صحبت میکنیم الان وقتی آقای ایران می صحبت کردن یه سری طبقه بندی دست بندی از تاریخ و حالا استوره و افسانه و جایی که بله. باورها یه سری دست بندی داشتن رفتن در واقع از تاریخ رفتن عقب یه جوری میشه گفت. حال نمیدونم درسته که اینجوری بگیم یا نه ولی کاری نداریم این خیلی جالبه که ما شرقی ها و حالا الان ما اینجا ایرانی هستیم ایرانی ها به این باور و اعتماد به نفس برسیم که سب و مطالعه و پژوهش خودمون رو پیدا بکنیم بله ابزارهای خودمون رو پیدا بکنیم نیایم از ابزاری که فلان دانشمند غربی بر اساس حالا اون روزگار خودش دوران خودش انگیزه ها و اندیشه های خودش مثلا دیویس سال پیش در اختیار ما گذاشته نیایم از اون ابزار هنوز استفاده بکنیم برای بررسی متون خودمون برای کارای باستانشناسیمون برای در مردم شناسیمون میدونین؟ این خیلی مهمه الان این دستبندی که ایشون دادن من واقعا نمی که از کجا بود دقیقا ولی دستبندی بود که یک دستبندی ایرانیه یک بله. ابزار ایرانیه برای پژوهش‌های های ایرانی نه یک ابزار اروپایی با اندیشه اروپای. اروپایی برای ارزیابی تاریخ ایرانی. بله این خیلی مهمه یعنی واقعا دغدغه دق من ما هر صحبت میکنیم من همش این موضوع تو ذهنم داره میچرخه همش نمونه های از این داستان که ما یک سری ابزار و یک سری مواد درسی حالا در واقع همچین چیزهایی از قرب گرفتیم و حاضر نیستیم رهاشون کنیم و میخوایم اصرار داریم که با همون ابزار با اون دیدگاه غربی با در واقع لنز دانشمند غربی رو بزنیم به چشمون متن خودمون رو بخونیم برد. حالا شما این فرماشتتون داشته باشه خیلی جالبم هست این بنیان های مدرنیته در داخل قرم خیلی داره به چالش کشیده میشه مثل فردی مثل لیوتار میاد به مدرنیستان میگه که آقا شما کجا دارید میگید فقط عقل هستش rationalشنالیزم هستی که مر... من بمر من میگم مثلا سیر رو جادم میتونه من ب معرفت باشه خود غربی ها در واقع هم دو قسمت کافش ها تو قسمت قدرت. پاورشون بله مدرنیته حاکمه و حالا حالا فکر نکنم یک گفتمانی بتونه اون رو به چالش بکشونه ولی تو قسمت آکادمیکشون قسمت کافه ایشون اون قسمت عوامانه شون پست مدرنیست داره تقریبا چالش میکشه و داره باها یکسان میگه ولی متاسفانه ما توی ایران نمیخوام از رو دست برداریم حالا علتش چی هستش نمیدونم ببخشید میان فرمايشون ناخوش می کنم خیلی خوب بود. دقیقاً آم... مرتبط بود یعنی با همین چیزی که من خیلی تلاش دارم که بگم نمیدونم آیا واقعا حرفم رو جوری میزنم که واضح باشه که بل. منظورم ده. چیه یا نه ولی بالاخره ما باید شیوه های خودمون رو پیدا بکنیم وقتی که شیوه های مطالعه خودمون رو پیدا کردیم بعد میتونیم می بیایم بشینیم شاهنامه بخونیم و با اندیشه ای ایرانی شاهنامه بخونیم با اون اندیشهی که تا 300 سال قبل شاهنامه میخوند اونجوری شاهنامه بخونیم بعد میتونیم بیاییم متون فارسیه میانمونو که یک گنجی بخونیم بعد میتونیم کتیبه هایی که وجود داره حالا من... الان اگر نمیدونم باز داستان خواهد شد ولی خب همه متونی که وجود داره یعنی مثلا ما کتیبه سومری رو هم از دید یک شرقی و با دید ایرانی بخونیم یعنی نمی دونم واقعا اینا میدونم می میدونم که این حرفها زدنش باز دوباره داستان خواهد شد نه شما میخواین راجع به تاریخ ایران صحبت کنیم مواد تاریخ ایران چه کار دارید با ها فلان اینا نه ما باید ابزار خودمون رو پیدا بکنیم و با ابزار خودمون این به قول شما این سرزمین میانی رو بررسی بکنیم بله. مثلا در زمینه شاهنامه بهترین چیزی که من میتونم الان یعنی میشه معرفی کرد برای اینکه واقعا مردم بدونن که شاهنامه تا چه حد تاریخیه فکر میکنم همین مقدمه شاهنامه ای باشه که استاد فریدون جنیدی نوشتن این مقدمه خیلی واضح داره نشون میده که شاهنامه چقدر تاریخ, تاریخ هست هستش. منابعش چی هست چرا مردم ایران نباید بدونن که منابع شاهنامه چی است و فکر کنن مثلا فردوسی هم مثل حافظ یک ذوق ری داشته مثلا نشسته شاهنامه را سروده. رو سروده حالا تو برنامه برابری اون مقاله شما رو اینجا کامل خوندیم مثلا خونده. نگرم نباشت مردم همه هم شنید <تصفيق> <بیگه> اونو <بوقت تصفيق> ما کامل بای یک... دکتر اینجا از قول شما عنوان کردیم درسته ولی میگم مردم چرا نباید بدونن میدونید یک زمانی شاید مثلا من نمیدونم ما حالا دی بی سال, سال پیش ما نبودیم ولی واقعا شاید دی بی سال, سال پیش کسی دق, دق اینو نداشت که مثلا فکر کنه که شاهنامه دروغ هست حتی بله بغیر از البته خب یک قشری که همیشه حالا اندیشمند بودن و واکاوی میکردن مثلا مثل ابوریحان بیرونی یک چنین انسان‌هایی بودن که یک چیزایی رو واکاوی میکردن ولی امروز ما باید خیلی در پی این باشیم که بخوایم ثابت کنیم که نه و به خدا همه‌ش هم دروغ نیست. آه. یعنی این قدین اندیشه تغییر کرده. به خاطر این الگوهای غربی که تو ذهن همه ما امروز هست. اگر واقعا مثلا شما بیاید مقایسه بکنید مثلا داستان شطرنج که در شاهنامه اومده با اون متن پهلوی همون داستان شطرنج یا مثلا مقایسه بکنید مثلا اندرز مهر رو متن پهلویش رو با اون نسخه شاهنامه ایش ببینید بعضی جاها من میگم وقت نیست دادم بخواد مثال ریز بزنه ولی بعضی جاها واقعا بیتی که در شاهنامه هست دقیقا ترجمه متن پهلوی هست یعنی اینقدر دقت وجود داشته در پدید آمدن شاهنامه یک چنین دقت واقعا میگم ترجمه حالا شاید آدم مثال هم بزنه بعدا مثالش هم بیاره قشنگ مثل این که شما یک خط از اون متن پهلوی رو نشسته باشین ترجمه کرده باشید به فارسی زمان فردوسی یک چنین پشتوانه ای داره یک کتاب مثل شاهنامه حالا باز دوباره ممکنه سوال یعنی پرسش مطرح بشه که خب همین متون پهلوی مگر چقدر سابقه دارن. اینا اکثرا قرن نهوم میلادی نوشته شدن و نمیدونم عموماً در دوره ساسانیان یا مثلا اشکانیان نوشته نشدن و بعدها نوشته خب بالاخره اینا بعدها از روی یک سری نسخه دیگری نوشته شده یه نسخه کهانتری بوده که این متن از, از روش نوشته شده بود. یا حتی اصلا اگر نبوده باشه به هر حال اون سنتی که انقدر قوی بوده در حفظ کردن در شرق که میتونسته یک مجموعه مثلا عظیمی فرض کنیم مثل تلمود بابلی رو حفظ بکنه میتونسته متونه فعلویر هم حفظ. خیلی با دقت حفظ بکنه اصلا فرض بفرمایید که ننوشته بودن حفظ بودن چه فرق بیخونه؟ فلاخره اون گنجینه وجود داشته حالا البته این هم یک بحثی میشه باز دوباره که چرا مثلا متونه که به یونانی هستش مثلا خب اونم شما میدونید ما متن نوشته شده یونانی دستنویس روی بلید. کاغذ یا پوست که نداریم متعلق به 3000 سال پیش 2500 بلید. سال پیش. اینا هم همشون در همون حوالی قرن نهوم و اینا نوشته شدن ولی نمیدونم چرا اونا وقتی اون موقع نوشته شدن سندن ولی متون پهلوی اگه اون موقع نوشته شدن سند نیست <تصفيق> شما مثلا یا متنی به زبان یونانی 2000 هزار پزار از افلاتون مگه ما الان داریم یه چیزی متلی بوده نه. و از اومده جهان اسلام هنین ابن اساق و ابن هنین اومدن اینو ترجمه کردن به زبان عربی بعد فارسی ترجمه کردن به زبانهای اروپایی <تصفيق> <تصفيق> چطور ترجمه واسه اونها میشه سند مثلا ولی از ما ترجمه نشه عین نسخش باز نویسی بشه میشه نه سند نمیشه واقعا این هم در واقع جالب هستش خیلی بچک از حضورتون و پیاناتون جلو باقای کریمی خب ما در استفاده از استوره و به اضافه در واقع استفاده از میتولوژی به قول حالا آیه ایران که این ترجمه درستی از استوره در واقع نیستش و این میتی به معنی دروقولوژی که در اضافه شده این ترجمه درستی در واقع نیستش در زبانشناسی چطور میشه در واقع ردیابی کرده واقعی بودن و تاریخی بودن استوره را. به نام خدا با درود خدمت شمندگاه گرامی جادر اینجا نخص از اولین استادم جناب استاد فریدون جنیدی که من علاقه کرد به این کار و من حتی آخر عمرم خودم را با میدونم میدونم سپاسگزاری کنم ممتلابی که گفته شد بسیار جالب بود خب یه پرسشی هم که اینجا پیش میاد این که خب ما، من خودمون خیلی میدونم که اروپایی‌ها به ما خیلی زنگ کردن تا این زمینه ولی خب ما چه کاری انجام ندیم خب ما علاوه از نسل‌های گذشته این گرسیم خب شما, شما چه کار, کار انجام دادید شما چه نشسید گریشمن بیاد بساتون تاریخ بوییدسه شما ویل دارن بساتون بنیمسه خب طبیعتا همین پرسشون نسل آینده از ما خواهد کرد که بخوا شما شما چیکار کردید شما چه کاری انجام دادید خب مثلا ما الان می‌بینیم در کتاب‌های زبان‌شناسی می‌گن تحت جملات همه تکراری در کتاب زبان‌شناسی می‌خونیم می‌گن نخستین کسی که مثلا فهمید که زبان سنگسریت با زبان اروپایی پیمان دکتر سرول ایلام جونز بوده خب بنا این هم ادامه دارن که گفتن خوسنگ سوید بعدش داره با اوسایی رابطه داره بعد دوره اینا با اروپایی رابطه دارن بعد به خاطر همین اسمش گذاشت گذاشن در نام یه و ساختگی خب جناب جمال شودرخشون شاد زبان جمونتی آورده بود یه به نظرم شاهکار یه شاهکاری تو کتابشون آوردن که بسیار جالب بود و من هم نوشتم آوردم که خشاورشو در جنگی که بین ایرانیا و یونانیا انجام میشه یاد مردم آراگوس پیام میفرسته و میگه از نوادگان پرسس و فرزند پرسوس هستند و به نیای یگانه دوقوم یونانی و ایرانی آشکارا اشاره میکنه یعنی آیا ویلیام جونز بوده که فهم که اینا با هم رابطه داشتن؟ 2500 سال پیش خشاش میدونسته یعنی کاملا نظام داره میکنه که خب مثلا همین اسطوره هرکول خب ما میدونیم هر... این یه بنده حمایت کردن، پشتیبانی کردن بوده در زمان یونانی که در زمان اریستو هم ریشه داشته تا امروز هم به ما رسیده که در واجه زنهار هنوز باقی مونده. یعنی همین الان همین حمایتی که یو در یونانی استفاده میشه با همه فارسی کاملا یکیه. شما مثلا میگید همولوژی، میگید هموگرافیک، میگید مثلا هموگلوبین، هموژن، تمام این هماها مثلا دریاضی هم استفاده میتونن هموگرافیک. اینا همه اینا همه هم هم هم فارسی که همین امروز ما توجه میشیم یعنی مثلا 2500 سال پیش که اینا تو دانشگاه های همدیگه میرفتن همدیگه کاملا من نشناخته هم میشناختن، میومدن ایران اینا میرفتن اونجا آیا نمیدونن اصلا که اینا زامونشون با هم یکیه چطور میان میان می نویسن که سرور اونجا جنسو خوسین کسی بودی که اینو کشف کرده خب همه اینا دروغه در مورد در اسطوره‌ای که فرمودن که میت همون اولش این یعنی دروغ یعنی از همون اول میاد یه خط بوتلانی میکشه روش یعنی شما دیگه قای نشده یه داستانه بله. یعنی تفکرات من بهش میگم خودشون مثلا وقتی خودشون حمله میکنن به قاره آمریکا و اون کشت کشتار رو انجام میدن خب براشون یه ننگ بوده میان میگه خب پس حتما ایرانی ها هم که اومدن اینجا قبلش یه بومیایی بودن اونا هم مثل ما اینجوری کشت کشتار کردن یعنی ما رو در گناه خودشون شریک میکنن این تقصیر ما نیست که اون این کار کردن ما چرا تابوانت گنه ها اونا رو پس بدیم. یا مثلا میان دموت آریایی وقتی میان صحبت میکنن چرا صحبت میکنن که تو ذهن انسان یک انگلیسی نظر میخوام داده کت شلواری و نجیب یعنی این. در که هم چیزی نیست یک روستایی که میبینید با لباسای خاکی خاکی اثر زمین میاد شما رو دعوت به میوه غذا همه چی شما رو دعوت میکنه اون یعنی آریایی و آزاده نه اون تفکری که در ذهن غربیو هستش ما همه چیزمون تف... تف... تفکر غربی اه... واکاوی شده همونطور که خودم دکتر فهمیدم ما باید اینه ایرانیش بکنیم یعنی با تفکر ایرانی باید جمعش بده سنجیم البته و صد البته بودانوش امروز و همطور که من جلسه پیش خدمتشان آقای عزیز عرض کردم علوم انسانی به تنهایی نمیتونه پاسخگوی این پرسش ها باشه ما باید از دانش زمین شناسی اوا باستان شناسی از خدمت شما از شد که ستاره شناسی و از همه مهم تر که برگ برنده ماست در این مسئله و هیچ گونه نمیشون رد کرد دانشه خب همه اینها ما باید در کنار هم بیام بیایم آقا این استوری ما درسته اگر ما از جمشید در صحبت میکنیم و از سرمایه جمشید در صحبت میکنیم اگر بگیم خب دانش زمین شناسی اومده اینو تایید کرده که همچین سرمایی به مدت مثلا 4000 سال ورم چهار اتفاق افتاده دیگه اون مقعدی کسی نمیتونه با ما چیز بکنه مخالفت بکنه چون دیگه دانش زمین شناسی پشت ما هستش بیا دیگه این از نظر اونا شاد میت باشه ولی من ایرانی باش این آقا اجازه نمیدم که بخواد به تاریخ من توهین بکنه ایشون حق داره به تاریخ خودش اثر تسلیم میخواد بگیره میتونه خودش بگه هند اروپایی کلمه اروپایی اکدی رو خودش من نمیخوام کردم اکدی اروپایی رو خودم بذارم چون که کتابی من به من گفتن ایران هل. من اون رو شناسم نه کسی به اکدیو که بخوام نامی که اونا واسه قرب قرار دادن رو بیام بذارم وسه نجات خودم اونا کازارلا دلشون میخواد به تا خشون تصوییم می بگیرن هری درشون میخواد کتاب بنویسن ولی من من ایرانی نود این رو بدم چون این پرسش از نصینده از ما خواهد کرد که شما چکار کردید خب این که اینا اسمش رو گذاشتن همه همون هم هم اول خط بوتون کشیده یعنی که کسی جرئت نمی کنه اصلا طرفش بره میترسه یعنی از حیاهویی که تو خود دانشگاه ایران حتی خود استاد ایرانی اعدهشون مثلا انجام بدن میترسن یعنی خیلی‌هاشون هست تا تو خود دانشگاه باشون صحبت میکنید اعتقاد دارن که اینا افسانه نیست ولی خب وقتی قرار میگیرن تو فضا بله مجبور میشن که اونا رد بکنا ولی وقتی مثلا شما تنها باشون صحبت می‌کنید نه کاملاً اعتقاد دارن و اسطوری شناسی من بازم خیلی ستایش می‌کنم باید به شیوه ایرانی انجام بشه و این کارا انجام شده که جناب استاد فریدون جنیدی شادروام جانشود و راستین کاری بسیار ارزنده انجام دادن و من کتاب کتابا جانشود درشون از یه لحاظ خیلی دوست دارم به خاطر زبان‌شناسی خیلی قشنگ توش کار کرده برای کسی بودی که اومده این جرأت رو کرده این جرأت به خودش داده بیاد واژهای آریایی زرا پیدا بکنه خب من نوعی پشوانه ایشونه که الان میتونم این رو به خودم بدم بگم خب منم یک خدایی که به نام تصاح در زبان کاسی پیدا کردم که میتونستم بیشش رو پیدا کنم تو زبانهای آریه که اینو کردم با خدا اینو تا چند وقتی گراه میدیم این کار ایشونه که به من این اجازه رو میده که بگم آقا من واجه راه در زبان هوریانی و ارارتور که تقلن شبیه همه رو پیدا کردم این پوشدوانه ها هستش که با ما این خب بعد از منم طبیعتاً کسی میاد کار منو میخونه اونم یه پشتوانه پیدا میکنه اونم میاد چی بهش اضافه میکنه ارادات کار منو میگیره و این کار باید انجام بشه یعنی اجبار ناپذیره یعنی نسل ما که دیگه این تاریخ اروپایا پذیره و طبیعتاً نسل آینده به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت اینا اگر صدا ما به گوششون برسه و حتی من ما در اروپا میتونیم خیلی چیز داشته باشیم نفوذ داشته باشیم یعنی بهشون بگیم که تاریخ شما تاریخ در دست ماست. این یعنی وقتی ما مییم از سرما صحبت می کنیمیم و چه سال پیش نشه زمان شاستی میگیرن 6 هزار سال پیش از هم جدا شدن خب ده هزار سال پیش اینا هنوز با ما بودن نشون اینشون میدید که شیش... این زمان اصل یخمند با ما بودن برای همینی که واژه سرما برف باران گرما آتش که لازمه زندگی بوده لازم لازمه‌ی زندگی اون موقع بود آتش و گرما و بلای زندگی اونها بود سرما و برف تو زهمه زبان ها مشترکه پس نشون میده که وقتی ما دریم میگیم از سرزمین ایران و نام میبریم از ما اینا با تفکر نام برگزیدیم به خاطر این بود که بگیم همه اینا با اون هم دوشا زندگی میکردن و این داستانی که در شاهنامه کاملا درسته اگر میخواست افسانه بسره بس ای و سال زمان گذاشته، چه نیازی داشته میتونست تو 1 سال 2 سال همه کارو انجام بده کوچک تام کنه. بس اگر 30 سال وقت گذشته یه چیز خودش خیلی هم جالبه خودش میگید افسانه دروغ نخواهم. وقتی فلاسفه بزرگوار اینو میگه چطور ما به خودمون اجازه میدیم که بیام بگیم این دروغ افسانه است. و جالب اینجاست من مینام تو بعضی از کتیبه‌های سرزمینی که نام می‌برن میگن این افسانه بوده یعنی سومری‌ها اینا برای خودشون افسانه سر بودن. خیلی جالبه چطور به خودشون اجازه میدن؟ کتیبه که بعد چند هزار سال پیشه رو بیان افسانه فرض کنن. به چه حقی به چه چیزی بیان این چجوری با خودشون این اجازه میدن که بخوان این افسانه فرد بخوان چون میدونن اگر این بخواد وزیرفته بشه خود به خود ایران باید رفته بشه مثلا خدا باید کریمر خیلی تلاش میکنه که این سرزایم آردار خیلی کوچیک تلوه بده که خیلی داخل فلات ایران نشه چون هم نمیخواد. میار رودان بگن بله. بله. بله. بله. بله میان میگن ایران مثلا ارتش نداشته خب اگر ارتش نداشته ما داریم می‌بینیم که تمام فلزات گرانبها و سنگ گرانبها رو از مصر رو میان رودان همه از ایران می خب اگر این کشور لشگر نداشته اگر گفت های فرداسی که در مورد جنگ های ایران هستش اگر اون الکی و دروغه و چه نیازی بوده خب ایران حمله میکردن ایرانه میگرن همه قاارت میکردن میبردن بله. نیازی نبوده که بخوام با ایران داده ستت بکنن خب این مال و ثروت در مزمان هم بوده فقط مخصوص این دوره نیستش که پس نشون میده ارتش در هم بوده وقتی نام یکی از پادشاههای های کاسی تقریبا میتونم بگم ه800 سال پیش از کروش بزرگ همون معنی ارتش داره که میدید ارتش یعنی اصطاده و عرابه وقتی همین معنی داره ه800 سال پیش از کروش بزرگ خب این یعنی چی؟ یعنی که ارتش ما وجود داشته سیستم ارتش سیستم نظام سیستم بوده بوده وقتی واژه‌ی گردونه رو اینا میشناختن گردونه بیشتر این که داشته واسه جنگ با برای عرب‌ها بر... بوده جنگی جنگ بوده پس اگر مثلا ما نداشتیم خب چرا کاسی ها نرفتن واجه اکدیش رو استفاده کنن چرا نرفتن واجه سومریش رو استفاده بکنن چرا میتانی ها هیتی‌ها ها همه واجه آرییریش رو استفاده کردن چه لزومی داره آیا میشه بگی که عربه رو کشف کرد یه قوم وحشی گفت میشه میشم چیزی گفت میشه گفت قومی که ناو میشناخته اصلا در عرصو میاره میگه رودایی که قابل کشی کاملا اصلا کاملا ناافتاق یعنی قابل کشی نه تو متن پهلوی هم این هست پس یعنی نشون میده که اینا ارتش دریایی هم تا داشتن اون خیلی رازها هست آخر این و من ترجمه می‌کنم چه واقعا شگفت‌زده که چطور بهش اینا نشده خیلی راحت ازش گذاشتن بزرگترین رازور ها را اسمشون در روخ دست که رازترین داستان ها همین هستش داستان هایی بنده خدا را کراست گفت چیکار دارن میکنن که شما خیلی گره نکن متشکرم جناب آقای کریمی عزیز شنمندگان گرامی وقت برنامه ایرانویج قسمت چهارمش اینجا هم به پایان میرسه و ما قسمت چهارم که در واقع ادامه مقدماتی در مورد بازشناسی و بازنویسی تاریخ ایران هستش به پایان رسوندیم و متاسفانه هنوز ما مقدمات رو به پایان نرسوندیم و فکر کنم یکی دو قسمت دیگه باید کار بکنیم تا اینکه وارد بحث شیلین تاریخی و و دوره کوهن تاریخ ایران بشیم ما خیلی متشکریم از شما بابت و حوصله و از منتقدین و کسانی که نقطه نظراتی دارن نقدهایی دارن به ها و مفاهیمی که در برنامه ارائه میشه صمیمانه تقاضا داریم که در نهایت ادب و متانت نقدهای خودشون رو مطرح کنند. حتی میتونن تو این برنامه به صورت مناظر و حضور پیدا بکنن و با کاشناسان این برنامه مناظره بکنن و با متود و علمی نقدهای خودشون رو مطرح کنند شما شنوندگان گرامی رو تا شروع قسمت پنجم این برنامه به خداوند بزرگ بسپارید خدا یار و